سلام علیه سیدنا رسول الله و آله طیبین طاهرین و مسلمین و داره مجمعین و داره مجمعین دیروز دیگری به صحبتی شد البته همون مباحث رو به تقریب دیگری و خلاصه که نقطه اصاسی در اصلاف مجموعی اون فرق ما بین ادراک افضاعی و ادراک انفعالی نسبت به اون جامع یعنی نسبت به اینی که میدانیم یک فقره در حلول انا این افتاده این ادراک ادراک انفعالی است اما کل واقع به این ادراک انفعالی است اما و گروز توضیحات کافی اینشالله داده شد که این ادراک ابداعی ما به مقدار همون مقدار انفعاله یعنی این ادراک ابداعی ما اثبات میکنه کنه کل واحد منطرفین ملاقی اون مقداری که اثبات میکنه کل واحد منطرفین یکی بود اشتناب باید این مقدار بیشت این دیگه اثبات و اگر بخواهیم ما به صدا همون تعدیر دیروز خودمون همون تعدیر دیروز حال اگر بخواهیم اگر ای در جایی بود بخواهیم به صورت که در جای دیگری هست سرایت بگیم این در قیاسه این احتیاط میست مثلا پرسته این در برایت آمده که خمر که ایک صورت معلی نیست به خاطر پرسته این اسکار مثلا ما این خمر حرام ما علت و اسکار پشکیش بگیم اسخار در هر چی که بود ولو خمر نبود یک ای بود درست کردیم با شکر و شیر ها، مسکر اما خمر نیست بخوایید بینیم حکر و سرایت به خاطر وجود ماده این در حقیقت این نوع قیاسه این از بحنده بحث ما خارجی تصمه مختصر بحث دیروز و حالا دنباله بحث این روز چون به اینجا رسیدیم که یک حالت ادعای ما داریم ما در تنجیز علم اجمالی به ذهن خودمون نقطه اساسی اینه یعنی اون صرف مطلب و اساس مطلب این از که ما در باب تنجیز و تنجز که حقیقتش انتقاش در ذهن حیرت تنجیز انتقاش در ذهن آن ما فقط به دنبال ادراک انتعالی هستیم یا نه ادراک ابدایی هم تأثیر می کنه؟ این نقطه اساسیش به نظر ما اینه فرقی در این جهت نمی کنه در ادراک ابدایی باید نقطه ای داشته باشه به طور کلی قبل از که وارد بشن ما چونهای اسمی اسم این ادراک ابدایی اینجور نیست که مطلقا هر ادراک ابدایی بیا تأثیر بکنه پس اگر شما که این خانم مثلا سابقاً حائز رو داخل امرتاید هست رو که آدم آدم. خب ای هم آلم الان شماستم یکه هم آلم بین رابطه این نیست ایش که نمیشه لذا خود این ابداع شرایطی داره. اینی که در کتاب اهل سنت که طبعاً ما در بحث خود رو متعرض نشنی کنه علمای ما متعرض هم فایده هم یکی بسیار شدیدی رو پیگیری کردم برای خیاس. اینطوری طور میسه هم جایزه اینقدر شرط و شرارط و خیومت و خصوصی ها اضافه کردن تا بودن خیاس رو جد دقیق میگنه استثمار هم همینطور اما انشاءالله عرض میکنن خود علم اجمالی همه این که بگیم علم اجمالی شرایطی داره یعنی این ادراک ابداعی چی جوری کار بکنه این طور نیست که ما شیار بکنیم ادراک ابداعی خودون چی درست بکنیم این هیچ فرضی وجود نداره شرط تنجیز یک شرایط معینیه که اگر درس ان شاء الله امروز صدا قانون توفیق می‌دن نه چون ما اون آیه نایینی متعرض شدن اونجا ان شاء چون آیه خودم ندارم معنیش رو معنی می‌خونیم این یک شرایط خاصی داره اینجور نیست که نفس همین سری خودش ادعا بکنه بگیم هر جا ادراک انفعالی بود این ادعایی بود اینو حقیقت داره یک شرایط ما اگر داره که خواهد آمان به نظر ما نکته اصاسی اینه مثلا اصل مطلب اینه و به نظر ما اگر این مطلب رو قبول کردیم این عمل قائده است فقط بحثی که از آیان در اینجا بحث عقلی رو مطرح کرده، کلا در تنجیز از اول این وقت ما بحث و اغلالی گفتیم نه عقلی بحث عقلی نیست البته ریش های عقلی داره اما عمده بحث تنجیز بحث اوقلائ است. اصلا خجیت یک معمله اوقلائست معول اقللی نیست او جیت که من مایسهقول استجاروره یکع معموله اوقلائست یک انگان که اوقللا در زندگی خودشون به ار زندگی اجتماعیشون در نظام قانونی خاار بر بحث اقللی نیست بحث. صنعت شامه بحثی در منطق و فلسفه هست. یا تحلیل اشیاء نیست ببینید مبعث اوغلاله سوجیه چه موارد بچنارد در یه موارد معینی ادعا هست یکیشم مثلا فلسه استصحاب مثلا چون شما یه صورتی از دارید اون صورت هنوز نقیض شیء شما می‌تونید در مقام انتصال چون در شباز بکمی ما استثابه ترین توی شباز موضوعیه اعتماد بکنیم تو زندگی ما هم هست و به نظر ما هم عدلی استثاب این قسمتش چید نداره به اصطلاح تعبد نداره این قسمتش اغلاییه این تعبدش به خاطر بعضی از نواز خاصه از زندگی در زندگی ما استثابی همه و است. ما این دیدین زنده بوده، دیدو این ذی مالک و خونه بوده. امروزی که میگه نه خونه و میگه خب ما رو خصوصیش می‌گناه ما هنوز رو ملت می‌دونیم. این یک اونو ماست. یعنی تو زندگی ما هست دیم. چیز خاصی دید. شما الان از حرام حرام باز بوده. می‌گید می‌ذاره حرام بسته شما می‌گیم سال‌ها باز بوده. اون حالت ابداعی شما وجود داره. خب ممکنه بسته باشه. اما شما می‌بینید که باشه. این هم تو زندگی ما یه همه متعارب چه نقطهی داره چه نقطه روانی داره چه نقطه احساس داره نقطه قدیم داره جدید داره مقایستی که الان در ادراز در روانشانسی جدید هست اون مرکز احساسی در بدن هست در من اون نکاتش ما الان کار نداریم ما اصلا دنبال اون نکات الان, الان نیستیم اونی که الان دنبالش هستیم وجود این پدیده تو زندگی ماست این احساس هست فقط ما اختلاف اون با اون اینه که این امر احساسی ادعایی این توی قوانین کارورد نداره تو موضوعات شده تو قواعد کارو اما بزرگان میگن داره دستور رایجین مثل قانون بیع و اثاثه مسئله مرجوم شید مرجوم از ذهن بره به به تقریبا اینا میگن داره مشکل نداره داخل به ذهن ما توی اعتبار قانون کارورد نداره اصلا ادعا کلا توی اعتبار قانون کارورد نداره این نظر ماها علاقی هم تفصیل غالی شدیم اون اعتباس قانی که عنوان هم مثلا این هم. این مستحب این مستحبه. این کارورد نداره در اساس و طایل در به استثناءی بودی خاص داریم کارورد نداره ابداعی نفس در شواز حکمی کاروردی نداره این توضیحات چند کن هم زوران مثال می زارید مثلا من داشتم یه نمودیشی دیدم یا مثلا من چرت آیا وجود واقع شده ما می خوام اون چیزی که در آیا موضوع عمل کنم یا من کم اومد من اجماع شهادت اون روایت یک احتمال از اشکال اخباری كنت من ولا تنقض اليمين یعنی. اونا گفته الیمین یقین بر یمین به عزو اون اشال اخواری ولا غیر از اشال اخواری یه احتمالی ما در اون جزئیه که اون رو باید نازه و سنت پیغمبر باشه چون رو باید از پیغمبر باشه که نه خب دیگه اون دقت بکنید <تصفيق> اون ممکن یک نکته دیگری باشه اون درش احتمال تعبد هست فیغمبر فران نگر شما یه احساسی کرد این به احساس وضوطون باطل نمیشد حتی یسم اسم او یکی داری این ممکنه تعبول باشه این ممکنه تعبول باشه اما استثاب به معنای احتمال برحافظ صادقه ربطی اون بحث دیگری ببینید ما این شبه تعالی توضیح داشت استثاب حقیقتش توسعه یقینه اون ممکنه تعبود باشه اون یکی به خصوص در نه نه نه و خصوص اون مورد که مسئله وضو باشه و لذا هم چون تعبود در این نقطه تعبود به سیغی نه میاد این یک تفصیلی داره من فکرم تو مبارسی صادق در ذهنستون اصلا یک شبهه داریم دارید مثلا در اون روایت دا سموظ یک شبهه کلی داریم مثلا این حالا خیلی کم تو ذهن شما اشاره کردم یه ذهن تو نرفت تا توی خودش چون وقت مالش بیاد میگیره این راگی پیش پسیه دقت بکنید تا اونجایی که روشن شد ادراکات ابداعی نسبت به موضوعات خارجی یک دو نسبت به احکام شرعی عنوان عام مثل مرخوب. تاثیر گذارند این یاد این را هم ادعای که اغرام میفهمند این ادعای ما اونی که در تنجیز علم اجمالی هم هست اینه ابداعش هم ارز کردن همیشه من دیمه به علسنه مختلفه دیروز یه شرح دیگری ارز کرده. شما بیاین حدول دول حساب بکنیم اون حدی که متیم این میشه ابداع این میشه تنجیز میشه جدید حد علم شما اصابه خون به یک اناه این حد علم شما. شما هر فایلی که از دو ایناشنام بگی میشه اعلامیه سری کلمه ابدا به کار اینه حالا خب خیلی خوبه فارسی حالا پرسه. مقدمه علمی رو مقدمه علمی معنی دیگه هم داره از ببین اصطلاح مقدم علمی رو میفهم مقدم علمی بعض تو علم اجمالی رو کار برده درده تو غیر علم اجمالی هم به کار برده مثلاگه اگه مخ صورت میشه در روزه بیشتر داشتهشه ز کم بیشتر این هم رسید مقدم علمی و اینکه علم اجمالی نیست؟ این علم مقدم علمی هم تتون تو شرونقدییس فر بودی این جاده ها. مقدم علمی پیش شانه دو تا معمن به کار میذاه و من نه اعطراف علم اجمالی این ما رو بر ولی منه اصلا علمی اجمالی نیست. یعنی شما این پیدا کردن تاکتیک مثلا مو یکی شد بالا بالاتر که یقین پیدا کنید این علم نیست اونجا. این اصطلاح مقدمتا علمیه این در اصطلاح فقها خیلی منطق به کار برده شده. اون خیلی اون کلمه مشهور کماسر اون جایی ای که مراد از مقدمه علمیه مراد احتیاطه اون جایی ای که مراد خب این تفسیرش همینه فهمیدن اون چرا؟ <سطه> همین دیگه این ادعا رو میکنه که یعقوب به فراخنده ها همین حد معنی این اقدام میکنه تا... که تو ضمنی دیدی از دو تا اشتناج میکنیم تعاون انفعالی خود اون خارج میشه هر دو محال <صف> میشه دو تا نیست دو تا تجسد نیست دیو ادای ماده تو وجود اشتنابه ادعای غرق میشه دیگه وجود اشتناج <تصفيق> چرا دیگه هم مقدمه علمی هست دیگه این همین مقدمه علمیه. اما مقدمه علمی تفسیرش چیه دو تا موضوعه یا دو تا حکمه شما چه مقدار این فعال پیدا کردی قطر تو یکی انا افتاد شما نمیخواییم به مقدار علمتون به اصطلاح تنجورت بیاریم. میخواییم بیش از علمتون یعنی اینکه که وجوب اجتناب از هر دو نه این وجوب ارتباط از هر دو میشه ابدا میشه مقدره انمیه میشه احتیاط ولی هر چیز تفسیر ما برای احتیاط اینه هر وقت این علامتش شم. مثلا شما دیروز دیروزین میگین زنده است اما اون که امروز زنده است این که ابدا هر مقدار شما از مقدار علمتون توسعه ازادی میشه ابدا اون زیادی میشه ابدا رو شرطی اصطلاح من از وجوب یاد نیست آقای دیر اصطلاح خاصیه ما آمدین گفتیم مقدار علمتون حساب بکنه اگر بناس حجیتش اوسع از مقدار علم بشه این اوسع رو ابداع روش میکنه چی که خود؟ موضوعید. ابداع همشون ابداع همشون خود همست اما در استثاب ابداع موضوعه این شعره ها این وقت اساسا امزال تأسیز کرده مثل کلون شهر بعضی بعد این نکرده سیار و غلال شارع شعره سیر رو کرده یکیشم همینه. روشن شده مدعای من اول روشن میشه پس این بحث که ما در تنجیز علم اجمالی شمیدیم خلاصه دو ما اینه خلاصه خلاصه شو. اگر شما در تنجیز و در باب حجیت تنجز فقط ادراک انفعالی میخواییم خب نیست اینجا اینجا ادراک انفعالی نیست ادراک انفعالی شما به اندازه فقط یک ملاقی نجاز و شما میخواد این طرف رو بدیم چون این طرف ادراک امکانی نداریم بیو جایزه همون که زه این گفتن مثل مرام مجلسی تو یه جایی گفتن شو دو طرف انجام بده خود. اما ما عرض کردیم که اوغلا در یک ظرف ظروف معینی ادراک ابداعی را منجب می‌ذارند پس به نظر ما نقطه خوب روشن شد نکته اساسی بحث این است که ادراک ابداعی منجزه در با یک ضوابطی که عرض به عرض می کنیم این تنجیزش هم عرض کردیم در شباهات موضوعی مطلقن اگر اون زواقص باشه در شباهات حکمیه اگر هدف اثبات خود و حکمی به علمانه می شه به نظرمانه می شه الا در اساس سا... واضحه دارم سا... اما اگر مراد عنوان آم باشه عنوان انتظایی بله میشه. به عنوان این که اطراف علم مثلاً این blockchain به عنوان این که حالت سابقه داره انوان این وיים به این حالت سابقه اگر می خودش اصبات مخواییم می بیشين حالت سابقه به عنوان این که مجهوله نیست به عنوان این که مجهوله به این انابیل اجاد نداره به عنوان مجهول اما اگر بگیم که واقعا برایطه اون احتیاجی به تعبد داره با ابداع نمیشه تا اینجا اگر این مطلب درست شد تنجیز علم اجمالی حسب القاعده میشه حسب قاعده یا عامه در باقی تنجز اندل اقلا حالا و اون مقدار تنجزش هم همون مقداره یعنی به مقدار حکم به مقدار تصرف در موضوع نیست این خلاصه حالا حالا که این خلاصه روشن شد الله تعالی برگردیم یک دور کلی روی کلمات استاد مروم و استاد اول فرمودن در مبحث دومشون فرمودن که اصلا جعل ترخیص در اساب اجمالی ممکن نیست ایشون فکر کن تنزل پیدا کنیم و گفتیم امکان جعل ترخیص هست در مبحث سوم که ادله اصول شامل نمی‌شینه روشن شد پرقه تصور ما اه... که اولا تا اینجایی که بحثه ادله اصولم چیز تازهی نداره علمی که در عدلی اصول بعضیش توی زیر علم داره بعضیش نداره گفتیم اونی که داره و نداره هر دو یکیه فرق منو کن اصلا تعبض بدون علم به خلاف نمیشه این یک و عدلی اصول به نظر ما کل این حلال حتی تعلم این تعلم مال تنجزه مال تعبض نیست اما کلوشه این نظیب حتی تعلم این برای تعبضه این هم شرمش بزرست اموری که شرمش رس و تمام اینها اغلاییه چیز خاصی نیست لذا ایشون میگه لوتن از ما از روایات به نظر ما از ظلمه چیز خاصی در نمیاد. اینه که مرموم شیخ فرمودن روایات شامل نمیشه. اگر قاعده اقلا، اشکال دیگر ما اینه که روایات و قاعده اقلا یک چیزن دو تا نیستن چرا من شعر شده که اینا این روایت غیر از غلط چرا بکشیه؟ این خیالت حتی تعلم این تعلم آمده یعنی علم بخواب علم حتی تعلم پس ما که در اینجا علم چون علم ما که کمی شبهه داره دیگه چون این هست یا اونه اینا اشکال سر کلمه حتی تعلم بوده خیال کردن تعدد غیر از مثلا سیار ما این تو بنظر نظر ما پهلا در این جایی حتی یک کونه هناک منجزون چون قطعا که علم محاکبه هستیز بیانه هم کافیه استوسال کافیه حالا بیانه هم درسته حالا بیانه حالا نقطه دیگر میشه که جای خودش رو عرض میکنم اون نقطه گذشت که احتمالا بیانه همونم جاید که شارج یه علیقی نکرده، مکرده حالا بیانه همونده ناظره بگو برد نمی خواب این رو بگم اینا از کلمه حتی تعلم خیال کردن دائره تعبد غیر از دایره اغلاست خب به جواب این حتی تعلم اینه حتی تکونه اونا خود جده او. اگر گفتیم ادراک ادراکی خود جده خب تعلم داغم تعلم میشه یه مشکل موشن نداره خب سمیشون نقطه یه اینا چون کلمه حتی تعلم آمده خیال که در این حتی تعلم یک مشکلی درست میکنه که مثلا در اطراف علمه یا یه گفتن اطراف علمه اجماعی نمیگیری چون علم نداریم یا یه دهی گفتن نمیگیره چون علم به جامع داریم علم به اخده اما قطعا داریم اصلا به نظر ما این حتی تعلم چیز خاصی نداره این همون ارتکاز و چیز خاصی نداره ارتکاز و اغلایی که اگر شاره تعبود کرد هر قانونی آمد تعبود کرد تعبود ظاهری خوده خیلی نکنه رو نه واقعی چون را وقت چاره تعبود واقعی میکنه. مثل یه مال مجمول ماله که میگه این مال تو این تعبود واقعی؟ این ظاهری نی? این مال مال تو پیدا کردی تو خیابون یک مالی و مال تو اگر گفت مال تو می این تعبود واقعی لذا اگر زهن موارسون باشی در فیلم نوش تصرف اگر بخواییم بخواییم در چیزی یا ازن مالکی میخواد یا ازن شرعی میخواد یا مالک میگه تصرف بکن یا شارع میگه تصرف بکن پس بنابراین تعبود اصولا دو جوره تعبود واقعی اون تابع علمی است تعبود ظاهری این دنهای اوهلا بگیره این چیز خاصی نیست هر جا که تعبود ظاهری بیاد تعبود ظاهری معنیش چیه؟ معنیش این است که تو واقعه نمیدونی کارو بکن وصلا <تصفيق> معنی تبول داره اینه حالا سور روایات تفسیم قاید سور مسیل علم نمیدونی نه وقتی میگه تو از دست مسلمان گرفتی مزکاست یعنی چی طبق همین تفسیر چون نمیدانی مزکاست حالا دانستی میشه هستی اونجا سیره نه، فیه اوغلا در اینه که هر جا تعبد ظاهری شد، تعبد ظاهری ما دام علم بخلافش نباشه. ما نمیدونم منتشر، اون غیر داره میشه. بله، ظاهری. <تصح> <تصح> الان در این فرضون یعنی در عوام تصرف می‌کنه، عوام الکی می‌شن. اما اگه من عوار از کسی بگیرم، دیگه حکم می‌کنین که دیگه یعنی همه موارد حکم ظاهری رو تعبد نه، اگر اوغلا هم حکم کنن، تعبد به این نه تعبد شرع. اگر در اون اینه مراد از ظاهری هر جا که واقع بر تو منتشف نیست اصلا معنای ظاهر همینه باید واقع منتشف نمیشه خب واقع منتشف تو حکم ظاهری میسیم خب میشه اون بحث ببینی من ترجع من دارم طبیعت تعبود چه اغلایی مثلا بنای اغلا برای این از که کسی تصرف در مالی کنه میشه بنا. این هم این رو تعبود اغلای این بنا رو اوغلا کجا دارن تعبود دارن تعبود مالک نیست اگر بدونم مالک کسی دیگری خب گیر دارن که این تعبود من نمورد شرعی یعنی ما هر جا آمدیم حکم ظاهری کردیم اصلا معنای حکم ظاهری اینه معنای حکم ظاهری مادام علم به خلاف پیدا نشده میخواد تو لسان دلیل بیاد میخواد تو لسان دلیل نیاد لذا به نظر ما روایاتی که داریم کلوشه اندک نزیف حتی تعالیم این حتی تعالیم نقطه جدیدی نداره خوب دفع بکنه نقطه جدید کلوشه نزیفه این نقطه جدیده این اشاره اضافه کرده اما حتا تعالی سیره او اینه دکتر من چیه یک سیره داریم سیره او غلاوبره که حکم ظاهری در موردش هست میخواد تو روایت حتا تعالی باشه میخواد تو روایت حتا تعالی نباشه اینا تصور کن چون سیره واد حتی حتا تعالی یک خصوصیتی داره نه خصوصیت فهمید اثنان... تغییر <تبیت مجموع شهر داری> <تبیت> خاله خوانا خیلی خب الان ما برطرف من شبهه ارزش کردم که این روایات در شواشه موضوعی است <تصفح> ما شما تکرار می فرمایید من دیگه اگه ای <تصفح> این تکرار را تکرار بکنم که نمی پس برابری اینه چون تکرار شد دیگه تکرار ندارم پس بنابراین اینی که من تصور کردم که ما غیر از پایلو و یک تعبدی داریم که تو کتاب آماده اومده اما اصلا تعبدی نیست کل احکام ظاهریه مقید است به علم بخلا حکم ظاهری خودش محدودیت داره اصلا حکم ظاهری تو نمیدانی من اینجور میگم نمیدانی تا دونسی عوض میشه پهیم که عمض میشه برداشته میشه عمض هم نمیشه چون واقعی میین شهار عامد این مال تو تا یک سال اگر کار کار مکردی از تو خارج رو به تو المال میروی این مهمی حد و واقعیه بگونی؟ این هر دو واقعی اما میگه تو نمیدانی این مزرکاست حالا دانستی این مزرکا نیست اینجا عوض نمیشه ها اشتباه نشه اصلا حکم فیناسه منتفی میشه جعل حکم ظاهری با به بخلاف اصلا منتهی میشه حالا این جعل می‌خواد سیره اغلا باشه یا می‌خواد سعبود شری باشه اون نصفیش نیست پس بنابراین ما اینا خیال کردن از وجود زیل حتی تعلم مشکل درست میشه ولی و لذا جواب آقای خویی و طبقل شفایه بعدی از روایات حتی تعلم نداره جوابش روشن شد میخواد حتی تعلم باشه میخواد حتی تعلم نباشه نیچ فهم کنه حتی تعلم نکته نداره نکته اساسی این هست و اون نکته اساسی هم اونه یعنی حتی تعلم ای مراد نیست یعنی شما جایی که نمیگانی مادام حجت نداریم ظاهرا این کار اونجوری معناش اون حتا کردن حجت اگر این نمی حتا حجت بگیریم خود اصول هم از حجت برخوردار اشاره می کنه برای در تقریب بودش خیلی خب گذشته تمام میشه اه احکام ظاهری ظاهری میشه حجت... یعنی یه حجتی که به طریق واقع شما رو میرسونه اون حجیت اگر نبود من برای چه جل دائم الان کنم. الانکه حالا شما حجیت قائم شد به واقع رسیم. اون حکم از این نکته نورده داشتی که صالب اندباه موضوعه. حسن پت... به که نقبیت پیش میاد. من بگیم که ظاهری حجت مادا که با حجیت ما یه تصرف اینجا که از رو این نلعلم هم اشکال دلغم پس اشکال اول ایشان هم اصل این طرح مسئله هم منتفیه سانیه این نلعلم هم معفوض سلحار اخبار ظاهره. ظاهران ارفت فی خصوص من آی خویی به نظر من مخاطر این نکتهی بگرد به نظر هم خیلی شاید مراد ایشان از نکتهی دلغم ایشان من وقتی کوندن این نکته رو نگفتن. این در حالا نگفتن شاید مراد ایشان اینست اون حتی تعلمی که در زیر رواد آمده مراد اینه یعنی ادراک انفعالیه و سانیه ایشون میگه اول باید این همون که به شک کرده به نظرم اگر ایشون این شاید که ارتکازشون این بوده مثلا بگیم بگیم آقایون حتی تعلن یعنی ادراک انفعالی چون که ادراک ابدایی بگیم داره که ابدایی درد مورد احتمال بودن این سانیه ایشون به این معنا باشه این معنا لطیفه لکه این جوابش گذشت که در یک جواب معیم پیش اغلا ادراک ادراعی هم منجزیت جواب سوم ایشان اینی که ایشون فرگونه کلمه بینه برای تأکیل علمه کلمه بینه رو شد. بعد روایت عبدالله عبدالله نسان را حتی تعرف اله حرام منو بینه ما طولی هر عرض کردیم زید از این که روایت عبدالله عبدالله در موضوع قضایی حقیقی است. غیر از این که به باید عبدالله نسنان ضعیفه غیر از این که به باید عبدالله نسنان اضافه بر ها مثلش هم در مصادر مختلف ما مختلفه تو برداشی منخص تو برداشی توی هست هم تشویش داره جوابش اینه که اگر ادراک ادعایی به نظر اغلا دوست شد هیچ مانه ای نداره که اینجا را بگیره پس مثال چی بوده, بوده. توی مدینه یا توی زائر و تو مدینه میگفتن آب بعضی از پنیرها از شی پنیر مائی می میکردن میک این چه اشکار؟ لذا وصف ماخری پنیر امام میفرما اشکال نداره کل چیزی ان حلال و حرام حالا که پنیر توی دوره حلال و حرام تو ما نمیگانی نمی یانی الحرام منه بعینه میشوین بخری این ال حرام منه بعینه شامل علم اجوال نمیشه دو تا پنیل روزن جلو امام میگن قطعاً یکیش میترد دیدیم ما از میتردش بازم امام میگنم میخوریم میگه قطعاً یکیش این مراد امام زادرن منحو به اینه چون اون درگه ای که احتمال انتباه ضریفه یعنی یک پنیل میته تو کل مدینه هست به اصطلاح اماما شمه غیر محصوله اون شد نه اینکه منه به اینه مراد علم تفصیریه نه منحو به اینه به ا اگر اگر آقایون به جایی این بحثشون اون ما رو ماره به کار اگر به اینه به نحل ادراک ادعایی شد به اینه واسه چه میبرمانی اونجا؟ اگر شما در تو نقطه نکته فنی سنی شد اگر به اینه رو تو ادراک انفعالی بخواییم درسته به اینه سبونه میکنه اما اگر بنا شد ما قبول بکنیم که ادراک ادعایی به شراحطی پیش و اغلا داره به شراحطی اون ادراک به اینه اینجا هم سه خوب ده قطع مثال دو تا پنیر داره پیش امام میگن آقا یکیش قطعاً میتر و یکیش هم میدونیم میتر نیست تشکیر سام نمیدیم رفتیم یک دکان ازش خریدیم این دکان یا این پنیر من میترد. از میتر از یه دکان میگن پردو شد اونم غیر میتر است حالا نمیدونیم آجا امام چی میتونیم بخواه اینجا؟ کلو شهردی حلال و حرام فاولکه حلال حساس عرفت حرام به قطعه باید پس نقطه فنی به جای تمام این بخصا این بود که آیا به ادراک ابداعی هم در مواردی با زوابطی منجز هست یا نه اگر منجز بود به هم صدقی میکن <تصفيق> اگر منجز نبود فایده نداره میخواد به اینه باشه میخواد نباشه کلمه می... اون کلمه به اینه چارساز نیست اون نمیتونه مطلب رو تغییر بده. این هم اشکال ثبا موستاد اشکال چارم هم که فرمودن اگر اینطور باشه باید بگیم حتی از خروج محل اطلاع هم علم اجمالی منجز باشه این هم جوابش رو شد شد گفتیم تندیز علم اجمالی چی میگه خوب دقیق چه مقداره کل واحده <ملاقای> ملاغی بنгез راست <ملاقای> اگه این باشه چی میخواد محل ابتلا باشه نه اون کل واحده ملاغی بنгез اینم اون بنгезه هم که فرض من در تهران داره محل ابتلا من نیش. یا این یا هر دو ملاقی هستند همینطور هر گویی هم. هم شده ایشون میگه چرا فرق شیخ فرق بین و غیر ابتلا این نقطه فرقش اینه اون ما حکم نه <ملاقای> اینشالا تو برسه افتلال نداره میگیم اگر خروج از محل افتلال رو ما بیایم بر اساس تنجیز علم اجمالی اثبات موضوع بگیریم خروج از محل افتلال ایچ تأثیر چون علم اجمالی میگه اینم ملاقی ادعا نزده اونم ملاقی حالا من ملاقی دارم اون که از محل من خورده این ملاقی ها. اما علم اجمالی چی میگه میگه تو تندیلی خون افساد این قدر مطیعتره ای که نفست ابداع میکنه وجوب اجتناب نه ملاوی با درم نمچن شده وجوب اجتناب. و این وجوب اجتناب رو موضوعات رفته و این وجوب اجتناب از این واحده حکم رو نفس ابداع میکنه اون بست چون این ابداع هم به خاطر منجزیته منجزیت هم به خاطر داعبیتش رو عرض کردیم؟ اگر یک زرد دو تو یا تو زرده من افتادی قدره کنی یا زردی زرده در آبازان وزیده داریم که از از محل اطلاع من خارجی اونجا اون حکم نمیاد چون این حکم جزئیه دیگه اون داعبیت بر من درست نمی کنه چون در شرط تنجیز علم که خواهد باید این علم کاری بکنه دو طرف داعویتش کامل بشه دو طرف برخ داشته, داشته, داشته باشه یا چی؟ خرز ازنا ادنا که داعویت ما هر شد. هم شما از قبل داعما در علم بحث ما هم خرز ازناس نه اقصا این داعویت این بحثشون اینه روشنی شد نقطه فندی؟ او... زرجی نداره بعضی نداره ن... نقطه فندی رو تصور بذاره این نکته فندی ایش که مرحوم شیخی چون خواهد آمد که در علم ایجمالی مطلب علم ایجمالی منجز نیست اگر احلال بیا باشی مثلا دو تا اناحاتیش نظر درسته بیش درد خب میگه اینجا منجز نیست چون احتمال انتباه زیاده از این طرف احتمال نیست این ضعیفه که اینقدر نکته مزاییه که رو اینمیتونیم دا... یعنی این دعاییت برای ما درسته میکنه این ادعا برای ما دل است میکنه میتونیم پرداشتشون اینطوری میبینیم که آیا دادمان بهتر از شد؟ ها پس مشکل کار این شد. که این آقایات قدس الله از سهاره همه از سهاره همه از ساتران خوندید اگر از این راهی رو که به ذهن ما رسیده وارد شده بوده اصلا این شباهات کلا منتقی بود و با این بیانه با این احضارت به مناغشات حقیقت تنجیز علم اجمالی هم روشن شد و اصلا روشن شد که بحثی که ما در واقع تنجیز داریم امتقاش صورته و روشن شد که این صورت بعض یفتا انفعالی است بعض یفتا ابداعی و روشن شد که صورت انفعالی به طبع قضیه خوصا در موضوع خارجی منجده انفعالی و اجمالا روشن شد تصدیلش و این صورت ابداعی با شرایط شرائط معیمی منجده نه در هر شرطی که از کلمه آنشون بخواهیم مطالعه بفرمایم در کتاب مرحوم آیه نایمی قدس الله صحبه فواهد الاسول چون مرحوم استاد ندارن اینجا باید ما خواهده اون که از کلمات مرحوم استاد بخونیم لیکن چون ایشون ندارن رفتیم به برسا کلام نایمی ایشون در این جلد سه فواهد الاسول این چاپکه جام درسید از صفحه هفتاد الامر نو از امرو خامس علم اجمالی امور. ایشون ادهی از اون که به نقاط فرمی انصافم لطیفی رو داره پنج تا امر رو ایشون فرمیدن بعضی رو ما اضافه میکنه پنج تا مطلب هست در تنجیز علم اجمالی و تحرمیشون. که بعضیش اشواد کم زیاد بشه که اینشالله خواهد آمد خواهد از کرد تبقیه زوابط معینی ادراک ادراعی منجزه روایات هم چیز زائدی ندارن خلاصه بحث این تعلم در زیر رویات نه مشکل در حل مشکل میکنه اون علم مراد منجزه و مراد ما هم از منجز به که انتقاش صورت باشه که غرض ادناس یعنی محرک و دایی اون که نگاهی وقت منجز رو رو اون که افرت با علیه عمل گرفت اون اونی احساس توضیح شدادی میشه معنا انصافاً تحقیق علمی است که ما منجز رو به لحاظ همین قرض ادنا بگیریم. این صور ابداعی نفس در یک مواردی صلاحیت برن منجز بشن. و اشکالاتی که من رو مستاد به, به اصل کلام و و اصل اشکالات کلن به نظره ها کافی نیست. نه تعبودی که در روایات چیز است و نه جوابهایی که من خوب را دادن انصافاً اینها تمام میشه و ظاهرش که حالا ما بعد فرزا این بحث آخر بحثم فردا ظاهرش اینه که این نقطه ای که از کردی است از اجرای اصول هم در یک طرف هم هم در دو طرف اینشالله این بحث فرزا این بحثم متاسفانه بینید صورت قصد ندارن مرحوم ناینی دارن و آغازی هم دارن این دو دارم دارن که اگر آن خواستن هم میشه به نهایت الافکار مرحوم که فردا این شالا میشین فردا این دو بحث میاریم یکیش که ترخیص در یک طرف میشه بره. یکی این که شرایط فنجیز علم اجمالی رسال الله علی محمد محمد یک طرف یک پس همه بعد اینه که وقتی یک از محله اطلاق خارج شد دیگه وجود نداشت چون بعد از علم اماممون محله اطلاق هم قبل از دین خدا میخواستن دارن یک همچین انتظاری بودون یه عجایبش الان بدیدین واظن من نه دیگه نجاسته همین تویلیه درمون شده نمی‌شه بحثش اون اطلاقش یعنی وجود اشتنام داره اگر نمیشه اگر تو مثلا اما اگر اگه طبیعی شرب نجیس داره اثری باشه لازم تکلیفی شده. به لحاظ وضعی نه تکلیف نیست. مثل ملاقاتی رو تکلیف نمی‌کنه. چون مثلا دو طرف یکی از دو طرف خمره یک شرب به لحاظ حرمت شرب داره اما حد برای جابونه. این فرض این که جرمش مالی اما اگه این مایه سابقا خمر بوده تغییر پیدا شد. مثلا بوش عوض شد احتمالاً از خمریت خارج شده. اگه سسو بحث اگر خود حدام دارین ما اینو بخاصره که مثلا روشه شب تمام بحث ما اینه رو مثلا بار بار تکرار می‌کنه مثلا کام طرف اینجوریه این تمام تندیز الیمنتونه این پس ناآورده اگر یکی از دو انار خود از دمای رو خود حد برش یاد مشخص اما حرام هست اما حد ارزش جالی نیست. اجرا هست. اما که استصحابی اجرا حد داره. بیینه رو استفاده نکنیم نافیه پیش می نمی. استفاده کردیم؟ استاض نشقابل خارجه. کردیم علی کی اشته؟ اشکل اشکال اشکلی اش اینه که اگر بیینه در اون روابط مسعده به معنای تاکیده در این روابط دیگه به معنی تشدید خارجی است. علم التفسیر. همونطور که ما مریضی فرمودیم. ما گفتیم این بیینه احتمالا اولا ایشاد نازد به این باشه که مورد است که شاره جعلی احتیاط کرده و دیگه به اینه یکنه یعنی تو هیل مقام دیگه جعلی احتیاط کرده به اینه لازم نیست این توضیح ما برد باید, باید. شما با این با اینه اینه نه مخواهد شعاره یه حتی تعرف حرام به اینه یعنی تعرف حرام در اون جایی که شعاره جعلی احتیاط نکرده اونجایی که شمع جلیه هست که تعرفت هرام نمیخوایی احتمالا کافیه نسی شواهد و فضو جمع و جماع اونجاها به این نه نمیخواید این حالی خیلی معنی عجیبه چون وضعه محمد عجیب بیرون حتی که تب به ذهن ما آمده ما آمده که مراد این باشه خوب تعمال بکنی یعنی حتی تعرف حال کجا به اینه در اون زوی کشار جعره احتیاط کرد نکرده اگر جعره کرد به اینه شما یعنی اما تعلم کردن آجاته قبل تا تو حوجت بیاد این واقعا یادوره حکم اگه حوجت باشه حوجت بوگله ظاهری دیگه هم باشه همینا بله خانم خود خود ظاهری داره صاحب میگه خالش. نه اگه حکم ظاهری دیگه جعل کرده باشه اگه جعل نکرده باشه نه آن جعل باید حکمیت بیاد تاووس جعل نداری شما در ذرق نبودن حجت این کار بکنی اونطور شرعی میاد حجت شرعی و عقلی که اشاره کردیم ما میگیم حوجت ابدایی حجت این خلاصه‌ست و می اگر در به بینه شو فهم نکنی که در اروال ببینم یه مثال بزنیم یک کیتی خفته موجوده فنی میگه اون قطعاً یک جزئی می‌کنه خیلی که قطعا گفت از یک بکنم حذر گفت اما من اصلا تصدیق نمی‌کنم به شکل هم دیگه سردوز یک جوری خاص این بسته بعدی یه جوری آیا اینجا هم بینه اینا ما خوام بخوریم تصدیق نمی‌کنیم بحث اینه که اینجا هم بینه پس نقطه چیه؟ نقطه اینکه حجیت به اینه و اینجا اگر گفتیم پس اون نقطه اساسی که ازراک ابدایی حجیت هست یا نیست و آیا حجیتش است یا اغلاییست ما حرف اونه که حجیتش اغلاییست شاره اون رو کرده چیز خواستیم هم خلاف اون نیامده